کار سهشنبه روزی است که باید با کار پیوسته کمرشکن، شکن ریزان و دوان آن را انباشت. روز تا سر در کار فرو رفتن روز جبران، کفاار شراب خوی های بیحساب تو به محت کودک میروی شتابان من سر خانه به شاگردانم میرسم. پسرک را که دیگر چندان هم پسرک نیست به محدکدک میآورم. تا نهار با تو باشد. من و آقای مددی برای دیدن و شاید خریدن چند کتابخانه شخصی می رویم. با یکی از فروشندگان به توافق می رسیم. تحصیل کرده و آقا و خوشبوش است. قهوه فرانسه می نوشد. مختصر تعارفی هم می کند که رد می‌کنیم. تشنه پریدن است. گذرنامه و بلیط و اجازه خروج و روادیدش به قول خودش همه حاضر است. چمدان‌ها را بسته. چیز زیادی با خود نمی‌برد. تمام داراییش را به عرض تبدیل کرده و در جریان تبدیل کردن است. فقط دشنام می‌دهد. هر حرکتی که می‌کند با یک دشنام همراه است. یک روز به خود دشنام خواهد داد. رقیق‌ترین دشنامهای عالم را. یک روز خواهد دید که از وطن و مردم وطن می توان گریخت. اما از چنگ گندیدگی روح خیش گریختن ممکن نیست. یک روز در قربت به زار زدن خواهد افتاد. به ندامتی زار زنان. هزار بار گفتم گیل مرد خوشخیال ساده دل. برای آن که به چنان روزی بیفتد باید که چیزی ای در روحش نهاده باشند. او یک مبارز سیاسی نیست که به علت تقابل، مجبور به هجرت شده باشد. هست؟ ها. باید او را میدیدی یک کتابخانه نفیس تخصصی در باب معماری دارد. داشت. اما حتی اشتباهاً یک دیوان حافظ و مولوی در کنار آن مجموعه نفیس جای نگرفته بود. مددی پرسید: هیچ کتاب فارسی ندارید؟ گفت: فارسی زبان ناقص نارسایی است. با این زبان هیچ مطلبی را نمیشود بیان کرد من بهد زده او را نگاه میکردم و او با نفرت بینیش را میگرفت و میگفت حالم از این مملکت به هم میخورد بوی گند این مردم بیسر و پای گداگشنه دلم را آشوب میکند بعد به آموزشگاه میروم و دو ساعت درس میدهم شاگردانم را بسیار دوست می دارم. گرچه شر رو بیتاب هستند قدری خرید می کنم. تو آقا پسر و دخترک را بر و به خانه می رویم. مادر با درست کرده است تو دوست داری یا اینطور نشان می دهی سبزی خوردن برراق با تربچه سرخ سرخ و پیازچه های از سفید به سبز سیر و یک قطعه کوچک پنیر خانگی، حالم از آنها که اینطور چیزها را نقاشی می کنند به هم میخورد. چطور است که نمیفهمند باید عین طبیعت را به نفس طبیعت واگذار کنند؟ هنر افزودن است: کارکرد خلاقه مغز را مزاف کردن بر واقعیات ترشی هفته بیجار کمی دلار بسیار شور به جای نمک، زندگی در معمولی ترین شکلش می تواند زیبا باشد. دیگر معجزه ای در کار نیست. سفره قشنگ بخش قشنگی از زندگی است. سفره قشنگ اما نمملو از غذاهای گوناگون که تعم همه چیز را لکدار می کند و تعم حیثیت انسانی را نیست. این را صد بار گفته ای. تا روزی که زنده ام میگویم تو هم جملت را باز میگویی و باز بگو بعد از شام می نشینم به ساز زدن مادر میگوید سر پیری و معرکه گیری تا حسنی تار زن شود گوش همسایه ها کر شود میگویم مادر تو سواد داری زن با کر قافیه نمی شود میگوید خوب گفتن مهم است نه قافیه بافتن میگویم پس این خوب را به اصل نگو ساز را کنار میگذارد. میگوید کسی که با حرف این و آن دف زدن را رها کند بی حرف این و آن هم رها میکند دفزن باید که فقط صدای دفش را بشنود نه پر حرفی های این و آن را اصل می خندد پسرک شادمانه کف میزند دخترم در خواب شاید خوابهای خوش می‌بیند که این گونه پیاپی پی لبخند میزد. فرشتگان با او به گفتگو نشستند چقدر آرامش